بخش نهم تا فرکه دوم صادقیه یک طرف است مجبور بودیم پیاده گذ کنیم تمام فکر و ذکرم پیش لاله بود من آشق دخترایی هستم که اینقدر محکم و قاطع صحبت می کنند. به شرط آنکه زن آدم نباشند هستن ازم پرسید کتاب بود؟ خیلی جالب بود تصمیه تو گرفتی؟ هنوز که نه به نظرت لاله مجرد بودستم چپ چپ نگاه کرد. گفتم یا متحل بود؟ فرقی نکرد جدیدن چیز یاد گرفته بود هر وقت بحث باب میلش نبود چپ چپ نگاه میکرد ولی با همه این احوالات من باید همون اول کاری تکلیف رو روشن میکردم دوباره گفتم همین جوری دارم میپرسم جای خواهری؟ مگه خود نگرفتی مطلبو؟ نه مگه حرفی زد؟ یک فکر کردم اما وقتی که حواسم به مسجل پرد شد لاله جیکا که زندگیش را روی کرده است یادتان هست که حواسم فقط همانجا پرد شد گفت نه حلقه شو دارم میگم مگه حلقه داشت؟ نه پس چی میگی؟ خب کسی که حلقه نداره شوهرش کجا بود؟ اینم شد دلیل گفتم خسته نباشی شاباجی منم حلقه نداره یعنی شوهر نداره؟ حالا باز اگر کسی حلقه داشت میشه بگی شوهر داره ولی اگر کسی حلقه نداشت تکلیفش چیه؟ حتما باز بگی که شوهر نداره صبر کردم ببینم از حرفی که زده بود شرمنده شده است یا نه متوجه تغییری نشدم ادامه دادم شاید حلقه یکی ده دقیقه پیش افتاده تو چاه توالت یا شاید یادش رفته بندازه یا اصلا تو فکر کن کسی پول نداشته رو فروخته اینو چی میگی هسنهان لب ولوچش را کمی کج و کرد و گفت چه میدونم چه میدونم؟ همین این جواب من نشد شاید کسی کسی دیگر دوست داره ولی هنوز وقت نکردم با هم ازدواج کنن یا اصلا شاید روش نشده به طرف بگه که دوستش داره خب که چی؟ بررفف دختر مردم گفت سلام خانوم محترم چه هوای خوبیه؟ میدونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ این کار آشقالی اصلن اگر از هر صدها دار شوهردار دربید تا آخرای عمرت نمیتونی خودتو ببخشی. برید گفت. آی ببری چرا فک میزنی تو؟ حالا خیال که من اللاله رو میدونم چه شوهر نداره طلاق گرفته. خیلی خوب این شادی حرفی چه مگه چند سالشه؟ چه بدونم؟ فکر کنم بیست خورده ای رو داره. خورش چقدره ؟ یک دو پنج نمیدونم. شاید ۲۸ سال. بچه چی؟ بچه داره؟ دختر بذره دو مرتبه توی صورتم براخ شد به نظرش می که پام را از گلی من بیشتر دراز کردم می خواهی دستگال بخرم برات برم خواستگاریش؟ خیالش به همی زودی در غم عشق ام. گفتم خواستگاری واسه چی؟ خیال کری عاشق شدم؟ تازه اگرم شده باشم تو رو کجا بفرستم؟ مگه خودم شیش هم؟ خب پس راجع به یه چیز دیگه حرف بزن این هم جوابش دختره را فرستادن که هزار جور چشم و ابرو روغمیش بیاید برکه آدمیزاد را گول بزنند. حالا من دو تا سالال کاری پرسیدم به تریج قباشان برخورد. گفتم پس من میخوام با مترو برگردم هستن. بارا یعنی چی برو؟ با هم اومدیم با هم, هم میریم. من نمیام را دور میشه. من از آزادی اتوبوسی میرم. حالا ببین میتونی حالا ما بگیری یا نه؟ اگه با مترو نیایی من اصلا نمیام گفته باشم؟ به درک؟ دمالش را افتادم رفتم تا من باشم که دیگر خط و نشان بی خودی برای کسی نکشم. شما نمیدانید که چقدر محکم گفت به درک داشت تاریک می شدد نیامد نیامد بعد از یک ساعت هم که آمد خدا وکیلی به اندازه یک هواپیما آدم توش تپیده بود. جمعیت توی ایسکا هم که قربانش بروم مثل ریگ از سراکول هم بالا میرفتند. حسن گفت: این خیلی پار عباس نمیشه سوار این شد صبر کن با بعدی میریم خیالت بعدی از این بهتره از اون متروه كه نیست بیا زور بده میریم بالا حسن را جلو انداختم و از زیر دست و پای به هر بدبختی بود راه گرفتیم میشد گفت بیشتر سوار گردهٔ مردم این تا اتوبوس یکی از این پیرمردهایی که همیشه زیر اینجور فشارها یاد جوانیشان میافتند با صدای زیر گفت ای بابا قدیم یه عزتی بود یه احترامی بود ما پامونو جلوی بابامون دراز نمیکردیم حالا این جوونا اینجوری یه بی غیرتی نمیگه هاج آقا پات درد میکنه شما بیا به مرگ یک بابای میانسالی که تقریبا دماغ به دماغ پیرمرده ایستاده بود گفت ای آقا دلت خوشه ها غیرت کجا بود الان دیگه همه ما اتادن. نه ندارن مف خودشونو بالا بکشن دنیا رو آب ببره برای اینا رو خواب میبره عزت و احترام بذار در کوزه آبشو بخور اینا واسه خاطر دو گرم زهرماری زیر گوش باباشون هم اینگار انگار که ما هم آدمی من جوایز دادیم به خاطر ده دقیقه روی صندلی نشستن از نظر جامعه شناسی داشتن نسل جوان را به کثافت میکشندند همین حرفا رو توی صورت نسل جوان میزنند، تازه توقع صندلی خالی هم دارند دستم را درست کردم و یک زنبوری آبدار پس گوشش خالی کردم و از لای جمعیت لولیدم و خداحافظ از آن طرف دستم را به میله یک صندلی گرفتم که از شانسم می نگاه کردم ببینم از کجا دارد آب می‌خورد که دیدم یک آدم نامرد اسم شماره یک دخترک معصوم را پشت صندلی نوشته است بفهمید من چه می گویم حرفم در مورد دخترک معصوم کاملا جدی است من خودم تا به حال از روی این شماره با صد تا اشان تماس گرفتم انصافا این کاره نبودند بیشتر اینها تنها خریتشان این است که یک مدتی با یک مش جوان اراذل دوست شدند بعد هم سر یک چیزی با هم دعوا گرفتند حالا همین بیشرفها ها شماره و مزنه قیمت را این ورانور می نویسن که مثلا به خیالشان انتقام گرفته باشند به شما هم می گویم. اگر کسی این شماره را رو دید حتماً باید نیستش را بیاندازد. حداقل حد اقل داست شماره آخرش باید پاک بشود اینها واقعا واقعاً دخترهای بدی نیستن وگر نه کسی شمارهشان را پشت سندلی ها همه همین را می دانند ایستگاه که رسیدیم. همان پیرمردی که گفتم یاد جوانیش افتاده بود به سرش زد که از اتوبوس پیاده شود برای همین نصف بیشتر ملت از در وسطی ریختن پایین که این یارو بتواند جا, جا شود خودش را به جمعیت میمالید و راه میگرفت پیاده شدن مثل سوار شدن نیست که درمان نداشته باشد اگر کسی از ته دل بخواهد پیاده شود همیشه راهی پیدا میشود. بعد آرام آرام سمت در راننده رفت و شروع کرد به این جیوان جیب کردن باید بودید و میدیدید جدن روی این کار ما سلط بود دوزاری راننده جلی افتاد پایش را رو روی گاز گذاشت و ده برو که رفتی توی راه هم برای کمکش قراران می کرد که ای امون تو می خوای از این هف پول بگیری اون ایسکایی که می سوار سوارشه مثل شافنه پرید بالا حالا که می خواد پول پولو اخ کنه لغوه گرفته لگوری خرفت یکی که روی پله هایی در جلوی ایستاده بود با حالت انسان دوستانه گفت. حالا شما هم سخت نگیر شاید نداشته روش نشده بگه داشته جیباشو میگشته این حرف رو برای طرفداری از آن پیرمرد نگفت بیشتر منظورش این بود که داغ راننده را تازه کند از این خاله زنکهای مجلس گرمکن بود راننده گفت ای آقا کجای کاری به من داری میگی دفعه اول که نیست که روزی با صد تا از اینا سر و کله میزنم حالا خدا پدر و مادر این یکی و بیا یه تکونی به خودش داد مثلا داشت دنبال پول میگشت خیلیو هنوزم که هنوزه موقع پیاده شدن بلیت درمیارم میدن حالا میبینن ماشین پولیه ها اما بازم بلیت نشون میدن که چی که پول ندن آن یارو خال زنکی هم حرفاش رو با سر و کله تایید میکرد چانه ی راننده هم گرم شده بود و پشت پشت هم میبافت آقا به قرآم از دست اینا که روزیگار پیروزیا یه زنه درآورده 20 تومن به من میده واسه دو نفر خودشو بسلش مردم هم مثل شغال خندیدن به عرضت عباس در ورده ویستو آمیده بهشو گفتم خانوم کرایش نفری صده پسرش دو فوش آب نکشیده بار ما کرد این روزگار ماست به گران به چه کرایه فوش دشت میکنیم حرف حساب میزد ولی هیچ از لحنش خوشم نیمد همیشه فکر میکنم کسانی که, که اینجوری در مورد پول و پل صحبت میکنند یا چند تا دندان طلا دارند یا اینکه توی فک بالاشان ردیف جلو دو تا دندان تا این چهره است که توی ذهنم ازشان ساختم اما راستش کار پیرمرده هم اصلا چیز دندانگیری نبود. اگر حرفهای راننده در موردش درست بوده باشد باید بداند که فرصت زیادی برای جبران کارهایش باقی نمانده است. مدت هاست که با خودم شرط و کردم که وقتی سنم از پنج و خورده گذشت نگذارم هیچ کار بدی ازم سر بزنم. توی آن سن و سالها آدم ممکن است هر آن قذل خداحافظی را بخوانم زندگی از یک به بعد. با شوخی ندارد